سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید وقتتون بخیر امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن قسمت دیگه از پادکست خودمونی باشید برای این هفته نگاهی دارم به دو خبر که یکی به صورت مستقیم و یکی دیگه به صورت غیر مستقیم ارتباط داره با جامعه ایرانی و ایرانیان. قبل از اینکه برم سراغ موضوع اصلی برنامه و در مورد اونها صحبت بکنم خیلی دوست دارم به یک موضوع شخصی اشاره کنم. نمیدونم شماهایی که دارین الان این برنامه رو گوش میدین چقدر با نوشتن میونه دارید یعنی چقدر می‌نویسید چقدر دوست دارید بنویسید وای اصلا از نوشتن خوشتون میاد یا نه من یکی که به شخص خیلی از نوشتن لذت میبرم شاید دلش این هست که از سال 2000 من شروع کردم به وبلاگ نوشتن وبلاگ‌های مختلفی توی ایران داشتم که هی به بهانه‌های مختلف همون جوری که می‌دونید یا بلاک شدن یا کلند بسته شدن بعد شروع کردم نوشتم برای سایت‌های مختلف از سایت‌های بَهائی سایت غیر بَهائی سیاسی گرفته تا و بلاکای که مجددا باز کردم و ادامه دادم اون کار رو البته وقتی در ایران بودم به اسم مستعار می نوشتم. وقتی در ب... اومدم به آمریکا شروع کردم با اسم خودم نوشتن البته وقتی که شما مشغول دانشگاه میشید انقدر تکلیف و کار هست که نتونستم اون نوشتن رو با جدیت ادامه بدم و یه مقدار کمتر شد تا اینکه مشغول به کار در تلویزیون دانشگاه شدم و به عنوان منجر قسمت ویدیویی روزنامه دانشگاه مشکول به کار شدم افتادم تو اون خط ویدیو تصویر و عکس که اتفاقا خیلی لذت بخشه خیلی جذابیت بیشتری داشت و اون رو بیشتر پسندیدم و بنابراین بیشتر وقتم رو گذاشتم برای تهیه ویدیو گزارش های ویدیوی اکاسی و کلن گزارشات تصویری قبل از اینکه این پادکست رو هم شروع بکنم خیلی دوست داشتم که به این پادکست به صورت یک ویدیو بلاغ باشه که هر هفته یک موضوعی رو بررسی بکنه. و البته ترجیحم میدادم و دوست داشتم در واقع بنه که ارتباط بگیرم با جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنم به زبان انگلیسی باشه. اما هرچی فکر کردم دیدم که یه نفره این کار امکان نداره به علتی که ساخت ویدیو اونهایی که این کارو کردن میدونن مقدماتی داره که شما باید آماده بکنی فیلمبرداریش ادیت کردنش بسیار زمان بره و خودش یک شاید یک کار فول تایم شاید که نه حتما یک کار فول تایم واسه که شما بخواین هر هفته یک قسمت ویدیویی و یک و طوری هم تعییه بکنید که مقبول نظر بیننده ها باشه برای پادکست از این نظر که ویدیویی در کار نیست شما نیاز به با یک بگراند قشنگ ندارید ناراحت مکان و لوکیشنتون نیستید خب خیلی آسان تره اما چیزی که در مورد این پادکست و ساخت پادکست خیلی به من آرامش میده و لذت بخش هست برای من این هست که باید برای موضوعات پادکستم بنویسم یعنی من متن پادکست رو که میخوام بگم و موضوعات رو که میخوام بگم حالا کلمه به کلمه نه ولی موضوعات رو باید بنویسم در مورد موضوعات تحقیق کنم همونطور که میبینی توی وبسایت هم زیر هر موضوع یا هر منبعی لینک اون منبع هست بنابراین باید در این مورد تحقیق کنم یعنی در واقع هم نوشتن هست قسمت نوشتن و تحقیق رو داره و هم یک رسانه دیگه که صوت باشه اینجا درگیر هست خب این هم از اینو فکر می کنم دیگه وقتش هست که بریم سراغ موضوع اصلی برنامه. برای این هفته یک نگاهی دارم به انتخابات اخیر کانادا و مشکل اپلیکیشن های ارتباطی در ایران. هفته گذشته انتخابات کانادا برگزار شد و حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو که پسر پیر ترودو نخست وزیر سابق کانادا است به پیروزی رسید. ابتدا بذارید نگاهی داشته باشیم به سیستم سیاسی کانادا. نظام پارلمانی کانادا از دو مجلس عوام متشکل از 338 نماینده و مجلس سنا متشکل از 105 سناتور تشکیل شده اعضای سنای کانادا توسط فرماندار کل و به توصیه نخست وزیر منصوب می شوند و نمایندگان مجلس عوام با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند حزب یا اعتلاف حزبی دارای اکثریت کرسی ها در مجلس عوام دولت را تشکیل می دهد در پارلمان قبلی حزب محافظکار دارای 159 کرسی، حزب دموکرات نو دارای 95 کرسی و حزب لیبرال تنها دارای 36 کرسی بود. اما حزب لیبرال تونست در این انتخابات 184 کرسی رو به خودش اختصاص بده. حزب لیبرال از زمان پایگزاری پارلمان کانادا در نیمه دوم قرن 19 یا قدرت داد در دست داشت یا به عنوان حزب دوم نقش حزب اصلی مخالف را ایفا می کرد. اما در انتخابات سال 2011 به رده سومین حزب پارلمان تنزل یافت. جاستین ترودو 43 ساله در سال 2013 به ربری حزب انتخاب شد و با برنامه هاوی افزایش حزینه های دولتی به منظور بازگرداندن رشد اقتصادی به کانادا وارد مبارزات انتخاباتی شد. بخش دیگر برنامه اقتصادی او شامل افزایش مالیات بر درآمدهای بالا به منظور تأمین بخشی از درآمد لازم برای اجرای سیاست انبساط اقتصادی است. این مهم در این انتخابات این بود که دو نامزد ایرانی تبار انتخابات کانادا از حزب لیبرال به نامهای مجید جوهری و علی احساسی با پیروزی در این انتخابات وارد مجلس کانادا شدند. این پیروزی در کانادا و در خارج از کانادا با های مختلفی رو داشت. مردم کانادا از این پیروزی خوشحال و خورسند بودند، بلتب ایرانی های مقیم کانادا هم با توجه به راهیافتن دو ایرانی به مجلس از نتیجه حاصل از این انتخابات راضی و خورسند بودن اما رسانه های داخل ایران هم از این پیروزی خورسند بودن برای مثال خبرگزاری تسنیم از پایان یک دهه محافظ کاری در کانادا خبر داد و کلی از هارپر رئیس نخست وزیر سابق بد گفت و مثل همیشه ملت بزرگ ایران رو هم وسط کشید و این طور نوشت ما ایرانی ها بارها بارها از استفان هارپر نخست وزیر سابق و دار و اش انواع اقسام موزگیری های ایران ستیزانه را دیدیم دولتی که با اجرای شوی نمایشی در تهران سفارتخانه اش را بست و تا توانست در مقاطع مختلف زمانی بر علیه ملت بزرگ ایران منتبافی کرد اما روز دوشنبه مردم کانادا با آنها فهماندند که استراتژی های آنها در بسیاری از مسائل از جمله تقابل با ایران اشتباه بوده است. اندیشه ها و تفکرات ایران ستیزانه استفان هارپر را در کنار دیدگاه های مثبت جاستین ترودو، نخست وزیر منتخب بگذارید که در مقاطع مختلفی از تعامل با ایران سخن گفت و حتی چندین کاندیدای همزبانیش کمپین طرفداری از ارتباط تهران اتوا را تشکیل داده بودند. حتی دو ایرانی یعنی علی احساسی و مجید جوهری که در لیست ملی لیبرال ها بودند، توانستند با یک پیروزی چشمگیر راهی پارلمان کانادا شوند. اتفاقا این دو از موافقان سرسخت روابط دو جانبه بین ایران و کانادا هستند. خب بعد از اینکه این خبر رو من در خبرگزاری تسلیم خوندم با خودم داشتم فکر میکردم که اینها یک جوری از استفان هارپر و محافظ کارهای کانادایی بد میگن که انگار از دولت ایران لیبرال تر وجود نداره. طوری از نخست وزیر سابق و دار و دسته اش صحبت میکنن انگار در ایران کسی دار و دست نداره و احزاب لیبرال و مخالف دولت با آزادی کامل به فعالیت حزبیشون مشغول هستند اما خبرگزاری تسنیم در این خوشحالی تنها نبود سخنگوی وزارت خارجه ایران نتیجه انتخابات پارلمانی کانادا رو که به شکست حزب محافظکار این کشور منجر شد باستوب و نتیجه اراده و خواست مردم کانادا در دوری جستن از به گفته او سیاستهای افراطی دانست. به گزارش خبرنگاری دورالتی ایرنا مرضی افغان روز سه‌شنبه 28 مهر گفت که جمهوری اسلامی ایران به رأی و انتخاب مردم کانادا احترام می‌گذارد. نمی‌دونم چرا همیشه این باستاب اراده مردم فقط در خارج از ایران نتیجه می‌ده و اینکه چرا ایران همیشه از یک سری از این بازتاب ها حمایت میکنه مثلا چرا در کشور خودمون وقتی مردم گفتن از سیاست های افراطی بیزارن جوابشون باتوم و کهریزک شد اما الان واسه کانادایی ها باریکلا میفرستن و به قول خودمون پپسی باز میکنن براشون و تشویقشون میکنن که به به چقدر خوب کاری کردید که از سیاست های افراطی دوری کردید آفرین آفرین کی میشه که مردم خودمون و دولت خودمون هم از سیاست های دوری بکنه که مردم اونور دنیا هم براشون دست بزنه و بگن بار کلا و آفرین از سیاست های دست کشیدید چند ماه پیش ایلنا در گزارشی به مشکل در دسترسی و استفاده از اپلیکیشن‌های پیامرسان مانند تلگرام پرداخت و نوشت به گزارش خبرنگار ایلنا مدت زمانی است که هموطنانمان در سطح کشور با استفاده از اپلیکیشن های مانند وایبر، واتساپ و تلگرام با یکدیگر تماس برقرار میکردند اما به مرور زمان هر یک به نحوی با مشکلاتی مواجه شدند جدای از آن که اپلیکیشن ویچت یک سال پیش به طور کلی فیلتر و مخاطبان دیگر قادر به استفاده از آن نشدند چند روز پیش توانا در خبری پرده از تقاضای جاسوسی دولت ایران از تلگرام برای جاسوسی از کاربران ایرانی برداشت. به نقل از توانا مدیرامه و بنیانگذار تلگرام روز گذشته در توییت اختصاصی خبر از تغاظای جاسوسی دولت ایران از کاربران ایرانی داد. پاول دروف در گفتگوی شفاف با مخاطبان توییتر اعلام کرد که وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات ایران رسما از این شرکت درخواست کرده که ابزار لازم برای جاسوسی از کاربران ایرانی را در اختیارش بگذارد. دولت ایران تهدید کرده است که در صورت عدم پذیرش درخواست اپلیکیشن تلگرام را در ایران مسدود خواهد کرد. خب این هم البته یکی دیگه از سیاست های افراطی جمهوری اسلامی که اگر این رو واقعا کنار بذاره فکر می‌کنم خیلی ها. خوشحال بشن و تشویق بکنن و براتون کارت صدافرین بفرستن اما خب تا بحث مربوط به انتخابات کانادا از ذهنمون بیرون نرفته این دو رو بذارید کنار هم دولتی که از ساخت استیکرهای غیر اخلاقی توسط نرم افزار تلگرام و نشر محتوی خاص توسط افراد و گروه ها رو بهانه برای غیر فعال کردن یک پیغام رسان میکنه و با بیشتر تقاضای جاسوسی می‌کنه رو باید چقدر جدی و چقدر این تشویق کردن و دفاع از کنار گذاشتن سیاست های افراطی رو باید چقدر جدی گرفت البته بحث جاسوسی دولت ها از مردمشون فقط مخصوص ایران نیست و خب حتما در مورد ادوارد اسنودن و فاش کردن اسناد محرمانه دولت آمریکا توسط اسنودن شنیدید این اسناد نشون داد که دولت آمریکا در چه حجم عظیمی اطلاعات تمام شهروندان آمریکایی رو جمع میکنه و اونها رو زیر نظر میگیره این که امریکا میکنه پس اشکالی نداره ایران همین کار بکنه البته حرف درستی نیست و پاویل دروف هم چندان دلش برای مردم ایران نسوخته و از این طریق و با فاش کردن این درخواست برای خودش اعتبار بیشتری خریده و وگرنه درخواست جمعوری اطلاعات شهروندان در همین آمریکا که کشور آزاد حس هم اتفاق میفته و شرکت هایی مثل گوگل، یاهو، اپل، شرکت های مخابراتی اینجا از جمله شرکت هایی هستن که با دولت آمریکا در این زمینه در گذشته همکاری کردن و چه بسا که اکنون هم همکاری میکنن اما در آمریکا حداقل اینقدر آزادی هست که این عمل به سوال گرفته بشه، روزنامه ها در موردش بنویسن و مردم رو آگاه کنن و مردم راههای محافظت از اطلاعات شخصی رو یاد بده. اما در ایران نا کسی جرأت اعتراض داره و نه کسی در دولت جوابگوی این جاسوسی از شهروندان و یا غیر فعال کردن این پیام رسان ها میشه اپلیکیشن هایی که با توجه به خروج و مهاجرت عده زیادی از ایرانیان مخصوصا در طی سال های گذشته یکی از بهترین راه من نمیخوام بگم تنها راه ارتباطی نه یکی از بهترین راه های ارتباطی ایرانیان داخل و خارج با خانواده ها و ایزانشون هستند خب دوستای عزیزم یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی هم به پایان رسید تا هفته آینده موضوعی دیگه و قسمتی دیگه خدایی ها رو نگهدارتون